خدا چه صورت عبروی دلگشای تو بست گشاد کار من اندر کرشمهای تو بست مرا و سر و چمن را به خاک راه نشان زمان تا قصب نرگس قوای تو بست ذکار ما و دل صد ست گره نسیم گل چو دلن در پی هوای تو بست مرا به بند تو دوران چخ راضی کرد ولی چه سود که سر در رضای تو بست چون نافه بر دل مسکین من گره مفکن که اه با سر زلف گره گشای تو بست تو خود به سال دگر بودی ای نسیمه به سال خطانگر که دل امید در وفای تو بست ز دست جور تو گفتم ز شهر خواهم رفت به خنده گفت که حافظ برو که پای تو بست